دائمتو دائمتو اللهم اشفیان او درمان و بحثی که امروز به, به صدا روایت تقیج در طغار عقرب که کمی از بحث خالص شدیم خلاصه بحث این است که این روایت با این که الان در مصادر موجود ما در کتاب لبنان از آن یک نقد آمد بعد در کتاب برقی نیز شده بعد در روزه کافی و در خریج در دوبار و در دو اله و بعد هم در تحذیق در دو جا آماده است. این یک واحد بافده است و همه بر میگوید به محمد بن خمیران توی محضن عبی انعبی عبدالله و توی بعضیاش عبی انعبی عبدالله که توضیحاتش دیگه گذشت نمیخواد تکرار کنیم هر شد که اونی که در کتاب محاسن برقی و کافی آمده من سافره اتذر وجه در کتاب تحذیب من تذر و در کتاب فقیه هم هر دو آمده در یک با سافره اتذر وجه در یک با سافره تزدوجه تنها این توضیحات بله آز مهد گذشت و که سفر خیلی بین اصحاب جانه افتاد اما متن زواج شد بله آز فتوای اصحاب بر اون شد و توضیحاتش نرد شد که اولم فقر رزا در این جهت وارد شد من صوبه کردن به امام عسکری که ایشون هم پراندن در فقر رزا در کافی همینطور در کافی چون در روز آمده نسبت فتوا نیشه بشه. اما در فقیه هم آمده بعد در مغنه مغموم فقیه در مغنه شیخ توسی در نهایی شیخ توسی و همینطور دیگه این حق بین این ازها رواج پیدا کرد و مطرح شده که این به لحاظ شهرت نمیشه جایی این کار نشه اما به لحاظ خود روایت ارز کردیم در مسادر اولیه مثل کتاب کافی و حتی نوادر علی و اصفات اینها ابراهیم ابن محمد ابن همران هست و سر محمد ابن همران تالا غیره محمد اونها آخرش نشناختیم در یه همی کی از ایشان. این پسر با هم نمیشناسیم این پسر در چند مورد در روایات وارد شده در چند روایات اسمیشون هست علی ابراهیم اما در کتب رجال ما وارد نشده یعنی ورگوم شیخ توسی یا مرهوم برگی یا مرهوم کشی مثلا هم پرسین مناسب جاف استیتش کشتی که رجال اینجوری نیست اسم این ابراهیم بردهش و ت کلم بعد از بحث برده در بح حتی مثل مرحوم مامغی هم در تندیق اسمیشان نبرده و اینکه دیگه خیلی متاخر البته مثل آقا کوین ها چون است که خااشتن ک ابره چرا؟ اما مثل مرحوم ماامغی که از مسابق قبلی گرفته و اون مقداری که مسابق قبلی استاجن ایشان ندا تا کااموز داره معوم توستری اسمشون رو برده، و استظهار هم کرده در عین عبارت ابو غالب زراری که ایشون کسر هموان نه بن هموان اعیان باشه استظهار در مسابقه هست و جواب این مطلب گذاشتون عبارت روشن نیست که کتاب ابو غالب باشه اصلا نسخه ای در نسخه سید ناصری صحیحه کتاب اون عبارت وجود نداره اعتماد بر اون فعلا روی که ما داریم خیلی مشکل این به سند چند تا هست تنها سندی که از این مشکل نجات پیدا میکنه سند مرموم شیخ صدوبه. چون در سند شیخ صدوق یه ابراهیم نیست ابن عبی عمر و صفوان از محمد بن عمر و یه توضیح خیلی کوچیک هم ما از کردیم چون روایت که ما الان داریم در کتب اربعه صفوان رو نداریم جز همین در کتاب تقیی چون دیگه صفوان نداریم اما ابن عبی عمر زیاد داریم در کافی و غیر کافی. ابن عبی و عمر عبیشان زیاده یعنی کم نیست این سند صحیحه سند صدور تا محمد ابن عمران صحیحه مشکل نداره الا اینکه ان عبیه داره اگر این عمران همون عمران نحیان معروف باشه خب سفرست اگر پدر محمد ابن عمران باشه اون رو نمیشناسیم پس سند حدیث علا کل تقدیره مشکل داره حالا اگر بگیم مثلا اینجا این عبیهه شده اینا توبش ازتراب پیدا میکنه. حدیث اون مستره بون و مطنن مطنش به خاطر سافره سندش هم به خاطر اینکه این, این انبیه کجا باشه استراب داره خود حدیث به لحاظ سندی قابل اعتماد چندان نیست نیمونه به لحاظ فهرستی که و اوقات ما میگیم مثلا کتاب مشهور باشه اون هم یک شبههی داشته اقامه کردیم در محل خودش خیلی احراز که فهرستیش هم روشن نیست واضح نیست و انصافا مشکل داری یعنی انصافن یکی اطمینانی به این حدیث موجود فعلا نیست اما اگر به دنبال ترازم خارجی باشه دیگه هست که از شخور رضا و منصوب امام هادی و و به بعد این مطلب بوده انصافا به لحاظه فتوا بین اصحاب بوده حالا این فتواه کاشی فرزین باشه که اعتقاد داشتن یا دن به قول گفت که در خوش زرر اهم منجل به من یا بگفتن خب حالا بالاخره انسان داشت نکنی شوهد از, از این جهت احتیاطم به قول من اون ما نمیدویم به هر حال خود روایت رو پی نفسه هران نمیتونیم نستان و خبرم واحده کسی هم نقل کرد جایی هم نغلق شده مثلا دیگه هم نیامده یعنی کسی یه از اصحاب این مطلب نه منعظم یه نفره. تمام روایت باب مانه رو همینه روایت محمد ابن حمران احتمال روایت کتاب خورزا فرق بکنی احتمال روایت توضیح دیم اما اون نگام مسترش نمیدونی متنش با اینه که فرق بکنی لم یال ابدا. من منتظر بجار قناع را لم یال خیران عبدان احتمالا روایت دیگری باشه اما الان مستر او رو نمیدونی که بوش فکر بکنی. از به لحاظ علم ما با مشکل روز انا ای این راجعه بگیم رواده را کسی خواست از خدشه بکنه در حق جای خدشه داره لیکن خوب ارسد هم قرائن بر قبول از خواب هم پرابانه. یعنی قبول است. این به لحاظ خود رواده به لحاظ دلالت هم یه سوزی هنمای عرض کردی در کتاب مقنعی شیخ مفید لایم بخی تحبیر لایم بقییل من عراز تزویج اعتظر است و قفل عغرب قول صادره سلام منتظر و جو قفل اقرل لمعمل چون از رواس مبار که کراحت بر میده. اما اصلا در کتاب غزان جونله اتق تزویج و قفل این صف اتق شوه قرمشاید مثلا به تق تزویج و قفل ارب عبارت که کهخورضا با عبارت مغنه ما توضیح کافی از چندر محله باشه این اطه این تبنی تحر رضا است له مروم یع ابی عبد الله اگر لم یعرف خیر را علما کی معنی باشه قسمت تبنی ایشانه اینم اون قسمت اجتهاد ایشانه صد مرحوم شیخ مفید هم همینطور این اصطلاحی این که صاحب حور کرده کردش کردش ظاهرا حرمت باشه ظاهرا این میشه قبول کرد قابل قبول نیست خیلی مشکل قبول این مطلق که ایشون در کتاب قروزه اردن قابل قبول نیست همونی که شیخ محفید فهمیده به کراهت لنگیرال حسنا با کراهت خیلی بهتر میسازه با قرمت نمیسازه خوبی نمیگیرم اینم به لحاظ دلالت و اما به لحاظ واقع علمی و خارجی ارس کردم من اون در این درسی بود که قبول از این ت سیر غمر به خود غمر و نور غمر در زندگی ما مؤثره این علمیش ثابت علم. این ثابت و تاثیرش هم به حسب نورشه مقدار نورش یه نور محسوسیه یک حالت خاصی داره رو سلسل عصبی ما مؤثره و روی میوجات هم و بعضی ها یک تأثیرات خاصی داره و همه نداره روی مثلا فرض کره زمین هم اون معنا نداره مثلا نور قمر که زیاد شه بهار بشه چند مثلا زمستون بشه نیست نور قمر این تأثیرات نداره قاعدتا تاثیر داره قمر روی نوره اما این که مثلا اولش بشه, وسطش بشه, بشه. مثل باشه وسطش باشه آخرش باشه مثلا بهار باشه پاییز باشه این بهار و پاییز در نور در ما تاثیر نداره شافش بهار و پاییز در حرکت شمس موثره قبول باز بکنیم اما در قمر نافون از این ما مثلا فرض این ماه کران توی ذیگه جاسم الان در مثلا آخر پاییزه کم کم میشه پای پاییز بعد میشه تافستان بعد میشه و باهات باز میشه زهرستان همجوری می‌چرخه نور خبر تأثیری در این فصول نداره خوب دقت بکنیم مثلا نور قمر تأثیر در جذب و مد داره یعنی آب دریا بالا میاد کشیده میشه مد میشه یا میره پایین این برای نور قمر را توی رو یه هست میگن یعنی افراد دیوانه میانه سال میانه ماه نور قمر رو سفره حساب انسان تأثیر داره نور قمر روی مشهور بین زنها مثلا از ماه تو شیشم هفتم هشتم، عادت حادث زنانه شنو تأثیر داره نور قمر در یک در جهات تأثیر داره اما جهات تأثیرش با اون که به خرشید میشه روشن نیست علمیا روشن نیست. اصلا بگم ماه زل اجاگه در بهار بود این طور در زمستان بود این طور در تابستان بود اون بهار و تابستان به لحاظ تأثیر نور خورشید وجود خورشید به زمینه این هست نم. گرم میشه، سرد میشه میبجاب میشه محصول خاص میشه اصولا من چند بار ارز کردم کاری که در قدیم من بود همین بود اساس تمدن قدیم برای این بود کار به مثلا پزشکی یا بیماری یا مثلا فرض مثلا که طب و یا مثلا داروشناسی شو یا مثلا فرضین بیوشناسی شو یا فرضین کشاورزی شو یا مثلا کارهای ساخت کار به اون مسئله اصلا میو تمدن خودشون رو فرض ما تبیر تمدن بگیم تمدن و مظاهر ظاهری در زندگی بشر مثل درو دیواب و زراعت و اینها فرهنگی اون ذات باطینی ساله در این که تمدن با فرهنگ فراشی اختراعی داره حالا اجماعه اینجوری معنا کنیم. تمدون فرحنگ رو اینجوری پر بزن تمدن بشری بدون شد در رابطه مستقیم با حرکت خورشید هست این رو این کار کن و تمدون قدیم هم سنگ میکنن همه چیز رو رو همون منوال طبیعی خودش انجام بدن طبیعت رو بشناسن مثلا میدونن فرسون فلانگیا مناسب از کاشتش باباها فلانی مناسب از خب الان شما میدونیم برنج رو یه وقت میکنم گندم یه وقتی میکنم این برنج و گندم چون واضحه تو زندگی ما هست اما این اینطور نبوده که مرضی به برنج و گندم بشه کل تردجا اینجور بوده کل درخت اینطور بوده کاش درخت اینطور بوده من نمخوام واضح این بحثا بشن در اینکه که اجمالا تمدن قدیم سعی میکند بیا طبیعت رو بشناسه و خودش رو همراه طبیعت بکنه، چون میگفتن طبیعت اگر درد میاره درمان هم میاره اگر مشکل میاره چارش میاره. هم میاره همه این کارها رو خود طبیعت میکنه خداوند به حکمت بالده خودش جوری خرم کرده که تمام این کارها انجام میشه تمام دون جدید شدیلی اینطور نیست که دنبال طبیعت داره اون یه ترسیم خودش میکنه دنبال کار خودش تمام دون هستی یا شرکالود داره یا الهادی داره یا در مقابل خدا خودست یا شدی علائم چشایی که ما الان میدونیم چون قمر در عقرب میذنه در ماهای قمری فهم میکنه بعد ماها آخر ماه بعضی اصلا مثلا یه روزه که آخر ماهه یه روز دو روزه تا رو 8 ساعته نصفش در آخر ماه نصفش اول ماه بعدی گاهی 20 ماه اجازه ماه اجازه ما چون اون مربوط منطقه چ بروجه مثلا خن عقرب منطقه اغرب هم برج اصطلاحاً آذر برج نهم رو اغرب میگن که برج آینده باشه روان خوز هستیم به اصطلاح قدیمیان و برج آینده اغربه که به اصطلاح میخوره اون یک سرومه یعنی 23 رو تقسیم اترابدن چهار درجه و خورده ای از خط استوا به جنوب به قطف جنوب از اینجا برژ اغرب شد بیگه تا 23 درجه برج اغرب ده. این فاصله در ما این فاصله در ما هر میکنه اینطور نیست که من یک جای ما خوش نه اگر ما باشیم و سر قوانینی که در نجوم مقرره تأثیر ما فقط به گردش خودش و نور خودشه. اما اینکه بیاد مرتبط بشه با بروج، نتایج بروج، اون نداره تأثیر نداره. از اینجوره. حالا این یک جاذبه ایی در روابط سوچم. بسیاری از کلا. اما اونی که عادتا هست اینه. اما حالا یک جاذبه ایی مثلا وجود برج ماه در برج عقرب یک آثاری داشته باشه سفر یا بذات زواج منکر نیستین نمیشه منکر بشین روایتی که الان داریم خیلی واضح نیست روشن نیست فردا و لکن عمل اصحاب به شرطی حالا اون مبانی که عادی دارن خودشون اسناد فعلا برای ما مشكله چون حالا بعضی هستن محترد این یعنی همین قاعدان اینجا همان خدمت رو عرض کنم که مثلا اگه بر فرق ما در جای عمل داشتیم این در حدی نیست که رواز ضعیف رو بیاد اعتبار بده ما بیایم یک چیز دیگری بگیم یک اصطلاحی رو خودمانگوی به کار داریم ما بیاییم بگیم یک متون دینی داریم یک متون اسلامی داریم یک فرهنگ دینی داریم فرهنگ اسلام این دو تا رو با هم قرار بگذ متون دینی یا متون اسلامی همون قرآن و سنت داره روایتی که ثابته فرهنگ اون چیزی است که علمای اسلام در طور تاریخ تملیک کردن قبول کردن اختلافو اینجوری ببینیم بگیم اون عومی که میگن خبر واحد ضعیف اگر منجرب نمیشه منجرب میشه یعنی این خبر جز متون دینی میشه این مراد در انجباره اون که میگه منجرب نمیشه که خب صادقه ممکن است اون بگه منجبر نمیشه اما لاقل میشه فرهنگ دینی فرهنگ اینه از حد فرهنگ میتونیم بگیم یعنی بین فوقهای شیعه جا افتاده بود اما این رو اسناد به خود اخلقهی سدیم خود خب این مرحله. ما بین بین فرهنگ دینی با متون دینی فرق بگذاریم خب حالا تلقیه و قبول شده لاقل این هست این فرهنگ بوده این به عنوان یک فرهنگ و خائنخویی که این تصور به ارزشی کمتر میشه باش معامله متون دینی نمی کنه. رد نمی کنه. از اون وقت رد هم نمیشه میون مصاحبه که این باطل است بریز دو نه رد هم نمی کنه. اما اثبات متون دینی هم نمی از اصلا یه اصطلاح یه طور شده باشه بیام فرق بگذاریم بگیم برطرف یک حدیث مثلا این حدیث سندش واضح نبود و قبول شد این جزء متون دینی نمیشه اونایی که میگن انجبار با جزء متون دینیش میکنن بگیم نه مثل آخ خوبی نگیم که اصلا کلا ثابت میشه نه بگیم جزء متون نمیشه اما جزء فرهنگ دینی میشه این یه درجهش بالاتره ما اگه بخوایم مناقشه کنیم علما گفتن این شارع گفت اینطوری اینطوری فرضه علما اینجور فهمیدن از کدا از طرفی سیستمی قرار نه می‌کنه که آقای خویی خوی آقای نه که کوچ منو می‌ریزی تعالم در مسئله خرابی کوچه بود یا خب یه بود یه معنی ایرانی بود که بود توی بود خیلی از ظاهره چیکوپی کی اندو جواره هست. آب که توی میشه. من که با این آب میشه مثلا شوسینی آب مثلا بله باشه. خب این آب بیا شما این آب پاک هیچی. گفت من صدای زوایای خودم رو نمی‌شنوم. درست من گفتن این آب پاکه به اسلام نده. اگر از پرسیدن که کی گفت این آب پاکه رو یک تغیر گفته نه گو اسلام گفته. نسبت به اسلام نده. او یک تغیر گفته و روایات اینجور اینجوری این میگه که با اسلام گو به آب پاکه مشکل درست. حالا بیا این تعبیر اینشان رو خیلی علمیتر بکنیم یه چیزی رو به عنوان فرهنگ دینی می قبول می‌کنی یه چیزی رو به عنوان متون دینی بگید مثل این جور روایات طرحش نکنید چون احتمال سر درش هست از اونورا چون واقعا گیر داره خب گیر سندی داره خیلی آدمو ما می‌ندیم اسناد به امام ندیم با عنوان یک متن دینی باش برخورد نکنید اما میشه به عنوان یک متن به اساس جزء فرهنگ اسلامی فرهنگ و علمای شیعه. چون در دنیا من هم یادم نیومده فرهنگ علمای شیعه و ققای شیعه که مثلا ازدواج با من در عرب مقصود خب برای اینو احتیاط کنم؟ خب برای اینو احتیاط هم بکنم بس. احتمالم داره اصلا قبول دشان او احتیاط بوده چون زرر دفعه زرر میکردن اگه با این احتمال داره این خودشی که از اون نکات خیلی مهم در مسئله انجبار اینه تا این انجبار مستند به این میشه که ما احتیاط هم بود و عمل بکنه. یا این واقعا رو حجت می و ساده رو از امام این دوتا رو ایک کمی با به هم فهم سن. این راجع به مسئله زواج و غنروف الاخرم ندیدم من نبینه بکنم الان نمیتونم بسواد بکنم که در بحث سنت دیده باشم این روایت برای فتماهی شده, جنده شده. میشه بگنه صدور نباشه من زن که پیش ما حجیت نداره باز باشه. اِثبات به حضورش اگه مشکل خواه. با روایت واجبه نص به علی. <تصفيق> خب یک درجه وسطی میشه. نمی شه را در اشار بگیم علما اینو گفتن. کلان ادعا میگن. یعنی که از انهای احجا دیگه مشهور بین علما اینه. اینکه میگن مشهور بین علما همون فرنگی هم برنده. میگن در دیگه اگه بنوشیم ولی مشهور بین این هم پرنگیدین مشکول یا احتیاط وجود این هم راجعه به این مختلف حالا این مختلفی بود که جانبی پیش از برگردیم به وحث نجوم ارز شد در باب تنجیم روایاتی نه هم شده اطلاقاتی نه شده که من ارز کردم این اطلاقات به اجمه ها زریفت و به استثنای یک روایتی که ایمانن به نجوم و تقریبا به قدر که در آخر زمان این چون اصلاح متعدد داره و این هم درست هم هست این درستی هم این نجوم استلاحی نداره و بقیه روایاتش محصد در اونجران ها به تن از مشکل داره و تلقیه اصحاب هم در این باره خیلی روشن نیست متاسفانه قدمای اصحاب خیلی پتبان از زمان از زمان شیخ مفید نقل شده که این بحثو مطرح کردن که الان هم در نوشتای شفیعی وجود نداره سید مرتضاس بعد مرحوم کناشکی اینا خیلی تند رفتن بعد دیگه تدریجا این توی فقه وارد شده و یه مثل مرحوم سید تابوس هم سعی کردن از اون طرف دفاع بکنه بگن این حق بود ده از علما این علم اشتغال داشتن تایید بکنن تا حد زیادی مگر اون مراتبی که مستلزم کفر میشه اون مراکب مرحوم سلتوس طاوز دیگه بعد از اون دیگه این مسئله اخذارت میشه اما بسیر تحریقات مرحوم سلی طاوز خیلی در کتابات فقهی ما مثل جامعه واسینا منعکس نمیشه. بعد در کتاب بهار این رو آورده اما به خود اجمال نظر اکثریت چون تحریم تحلیم نجوم و احراق کتب همینی که از وسائل خوندید که عبارت وسائل هم خونده کن و بعدها مثل مثلا مرحوم شیخ و دیگران شروع کردن، البته این مرحوم شیخ انصاری مبدع نیست از همون عبارات صاحب و قاصل هر شیخ باهایی از من خودشم افلا باشه بعد از علمای دیگه هستن اینا شروع کردن بحث کردن که کدوم قسمت بحثش مثلا حرام است کدوم بحث بحث حرام نیست کدوم قسمت مثلا تعلمش شرام و کفر کدوم بحث از این بحث اصل شد که انصاف قضیه ب طبعا مرحوم تابوس عدها زیادی از روایت عده در تاید وجون خیلی زیاد که انها غالبش نه سند روشن دارن نه مدر بعض بعض ن مصدر وازحم ندارند ه انا ون ی ی ما دی هم خارج وهم تطریر و عبارت وسائل جای جایز تکرار نست انصافش اگر بخایم نگاه بکنیم مم یک روایت صاف روشن وازح معروف سند واضح در این جهت نداریم سنیه ها هم بعدها چرا اونا وارد شدن اونام مثل همین عبارات اده از علمای ما اون روایات منصندر منظمین ها رو عوردن البته سندرش هم پیش خود اونا ها ضعیفه سر روشی نداره اون روایات حالا از مجموع این روایات چه میشه فهمید و غیر از این که در اده از آیات کتابی هم با عنوانی که از آثار عظمت الهی آیات الهی ورقمن قدرنا ها منازل ها تا آ و از شمس و تجیر مستقردنده ها ادهی از آیات در این حد دلالتی میکنه خیلی از حالا مسئله زینت بودن که در روایات در آیات آمده. اینه که مجشه اختلاف بینه علمان شده ما ارز کردیم مجموعه روایات و اقوال و آیات رو که نگاه بکنیم مخصوصا در روایات و مخصوصا دیگه از زمان امیر مومنی به بعد منصور بیشان و امام صادق. این مجموعه در دو طلکن به اصطلاح در دو محور هم. یه محور این که اینها از نظر علمی ثابتن مثلا رصد بین حوادث ما با آسمان و با ندوم و با ما و خوچید و زهره و عطارد و زحل و اینها وجود داره این رصد هست یک بحث این بود که آیا چه مقدارش کفر چه مقدارش حرام جایز جایز من به نظر میاد که کلمات حتی تا زمان شیخ هم حتی کلمات ادهی از معاصلین ما خیلی در این دو محور واقع شده این دو محور رو ما از هم جدا بکنیم یک مهور بحث علمیه این بوده در زمان پیغمبر از و در خود مکه و مدینه یه صورت بسیار مبتزلی از نجوم بوده و آمیخته بوده باید تلسمات و پیشگویی و فالبینی و سهر و جادوگری و اینا مثلا کاهن و حالا کاهن رو به ساهر و جادوگر میگن کاهن و من اینا همه از یک با حساب میشدن یک حساب یک پی پیاله بودن خب اینا مردم بودن خرافی بودن حرفای بیهوده ازدهشون کمی سردی اقافیه بلد بودن مثلا پشت هم با سردی اقافیه میخوندن این یک نفر کاره و این یواش شواش خب بعد از اسلام وردن ایرانیها ها، همینی که در نهد بل هم داره که یک گهغانی از ایران اصلای ترسفید ترسفید سوافت خوندیم رابطه خوندیم خدمت از دن میرسید این جنگ شما اینجور میشه چون در ایران نجوم بود خوب در از که هر طب بود هم نجوم از این علوم رسمی و هر دوش هم ایرانی و الاسمیستن یه مقدارش فلسونه از مصر و بابل و مدرس بابل اجمالا روی ایوان تأسیس داشت و این واسه شاپور معروف، و لكن بیشتر احسانش ته بود. حتی این طبیب معروف عرب، خالص بن کلده، این در حین مرضی جندی شاپور در که سرش، نزد ابن حارث یا نصر بن اون هم اینجا بود و حتی با یه مرغار به اصطلاح با فرهنگ ایرانی این سواق چیلده و دمنه و اینجور چیزا هم خورده بودن، بلزکی معروفه که این هم با جناق پیغمبر، همین پسر حارث، خواهر خدیجه زنیش و یک آیه قرآن هست که انزل علیه انزل بهتر از قرآن میارم میگن مراد همینه چون بیان یعنی میشه برای مشکیم به سه زبان فارسی ها و هندی هایی که ترجمه شده بود میگه و اگه محمد علیشان صلی الله علیه و آله به حساب انبیا میگه منم برایشون به چیز مثلا کلیله و دمن و این جور قصهای تاریخی و رستم و اسفندیار ناخونده بود میام ما اینا برای عربا نگفت که یه حجاز این تو نگردن حالا روش این حال ناز یا نه یک شبهاتی هست من نمیخوام وارد ده از ما ستشقیلن نقلت رو اولتایی کردن این ایک بحثی داره نتی که حالا اینشانا جدیگه که جنگی شاکو یه مقدارش از یونان بودن یه مقدارش از هند بودن یه مقدارش از مصر بود فرهنگ چینی پیش ما ایرانی ها کم بود لذا خواهی با یه مقدار پیش های منجمین و حرفای نجومی و تأثیرات نجومی که در مر و چه در مرحله کلی کره زمین چون که رو دقت بکنید بحث نزو به راجع به شخص و تاد و امانه و چیزی می میره زنده میشون که نمی میره که میاد که سفر میکن از این حرفا بود این یک بحثش بود یک بحث نجوم هم حتی در رابطه با تل بود یعنی با رابطه با علوم طبیعی حالا که به خب تن مثلا ندی مثلا نجوم رو نزو که هستا میگرفتن مثلا خورشید رابطه با آهن بود مثلا این با مثال رابطش مثلا با آتشی و چون چهار تا هم انصال فرض کردن خاک و آب و هوا و آتش مثلا مثلا زهن که در رباطه ما اسمش آمده رابطه او رو با خاک اینجا یه رابطه دندگی خاصی داره باز می آمدن تلاس رو این شما سویاد نه کنال فرد مثلا مال اون زمان های مثلا هزار پونت سال قبله که شاید میذاره درabondin قدیم مردم تغییر شیرازی که از واقعا اثر با بزرگی در هنر زندگی میکرد ایران هستش شاعر ایرانی به نام خود ساکن هند هم محضر ادویه در هم قرابادین خبیه قرابادین در اصطلاحات قدیم به واسه ادویه ترکیبی اگر ادویه مفرد بود که دوا بهشون سن گلاغون کنه اگر به چات و انجم میشد گفتن ادویه ترکیبی یا قرابادی اون در اول استان لیست مفصلی اله سنس سال قبل به یه لیست مفصلی در اولش داده تاثیر مثلا خورشید اینا در سه مرحله حساب می‌شدن جماد، نبات، حیوان اصلا این حیوان رابطه با خورشید داره این حیوان رابطه با ماه داره این حیوان رابطه با زمین این حرفا زیاد نفرمایید مال زمان جاهلیتو نه اصلا جلد علم خود بعدها مثلا یه های عجیب غریبی ایشون داره رابطه مثلا ماه ها یعنی برژه ها با نواتات زمین مثلا گلگاه رو رابطش با زوهره مثلا فلان مثل نیست با زوهره مثلا فلان با فلان مثلا نبات رابطش با ماهه با زهره است با اطار و زهره و زهر رو چون دور میدونستن بیشتر رابطش با گیاهان و یا نواتی که سرد باشه و خوش باشه مثل خادی حالا من دیگه مخونم این شهره باشه در حضر مخونم بگم که این رابطه این <تصفيق> بعدها حتی به عنوان علم محفوظ موند این قیل از حالا اون پیشگویای و فالبینیا و کهنه از چاپ شده به عنوان علم چاپ شده من به نظرم میاد که خوب بود که علماء ما میامدن این بسمت رو بررسیدی کردن که مراد نحضر در اون اون عباسمی رو مومنین و یعنی مرهیمون سلام یک مرده شاید حالا چون من میگم ذهن و قدام بیشون حالا علماء رفته توی کفرو شاید یه خدمتی که ائمه عليهم کردن این بود که خیلی از این حرفها علمی نیستن، ثابت نیست. یعنی ما اگر می‌اومدن از این زاویه مسئله بررسی میکردن نافعتر بود. در حقیقت پیغمبر اکرم صلوات الله و علیه و ائمه عليهم السلام هدفشون از این کلمات این بود که اصلا این ترتیبات یک به علاوه بعض‌ها در کتاب‌های علمی شما نوشته، اینا هم ثابت نیست. اصل نکته پوپ علمی بوده. مقوله اون شعر معروف و حافظ نگار من که مرکز من از خطاعرش بغاز مثلا آموز سر مدرش شد در حقیقت اهل بید هدفشون این بود که مثلا علمی دولت آمد علم آوردن مثلا من عرض کردم کتاب دراوادی جلد اولشون رو چند چند صفحه جدول کشیده رابطه یه سیارات صدر رو با نباتات با جمادات جماد مرادشون خاک و آهن و روی و قلع و مس و حیوانات هم فرسول یعنی در حیوانات لطب مثل روباه و موباه و نمیدوند گرگوینا هردی قسماناتشون استفاده میکردن رابطه این حیوانات با اون برسال نجوم و از رابطه سرزیجار و که یه جدولی داده این یه جدول مفصلی داده در رابطه هدف اهل بیت علیه السلام و هدف رواهیت این بود که اصلا اینا ایل نیست اینا خرافات اینا خیالاته اینا چون سیطره نداشتن با آلم بالا خودشون محکوم این ستارگاه میدن نسبت میدن این افعال رو میان در اینکه که مجموعه تقریم با همدیگه ارتباط دارن جای بحث نیست اما اینکه که مثلا فقط هم با کره مریخ ارتباط داره این حرفی دیوده دقت بکن این حرفی دیوده فکر نکنیم وان جاهلین عرب اشتباه یا فکر بکنی مال ما مثلا ترجمه اولیه‌ی مثلا طب یونانی در سال‌های 300 400 هر کلم کتابی که در سال 1000 خردی نوشته شده و کتاب واقعاً نزد مولایی همشه مصوفین علویه خراسانیه که هم شیرازی بهش گفتم چند خراسانیه انصافاً نزد مولایی سنه هم محزن علوی کتاب بسیار خوبی بسیار نافع است امتیاز اندیشه دیگه هم پیدا نمی‌شه و همین خرابادینش بسیار کتاب خوبیه است اما خب اینا می‌داره مثالی هر هست این ولای علم نهمیستان دقیق می اینا پس ما بیاییم کلمات اهل بیتو به جایی که من فکر می یه مقدار شوید نظر مرمون صاحبه ها را بگیم باشه اصلا علمی کار به کفر رو افترام این کفر هست و کاری به کفر نداری هدف اینه علم امین سلام الله علیه که به اون دهگان چون اینا نجون بودن بخاری به اون دهگان بگن این چیزی که به اسم علم رفتی علمی ضر مرحوم شیخ و دیگران که همه ی زاویه بحث بودن محور کفر و ارتداد و فسخ و نه نیست بحث کفر نیست از این بحثو تو تو بودن بودن توی یه نصحش بود تو همش نبود همون مشکل همی شد دیگه میگه نصح پس یه بحث خوب دقت میکنی بحث علم و میگم از این زاویه متاسفانه علمان ما ننشتن و حقیقت آیات در روایات به مرات پیرا برعکس در روایت تحلیل این که آجان این علمی شما خودتون خود, خود معرفت کردید این باطله این اصلا علمی از دنیای این باطله این یک قسمت هست. یک محور روایاته حالا اگر شما ترید نگاهی فرمون درمیاد محور دوم راست محور عبادی راست اینو باید قبول بکنه هم محور عبادی و این که آیا واقع این عبیده درست چون بلا افشار در اسلام اولین ركن و اساس فلسفی اولین ركن صحت عقاید یعنی تصدیق عبیده که ركن اوله کاره یعنی اسرائیلی که اسلام مسئله توحید و نبوی شعر رو بجای اعتقاد می رین این که ایدهی از کسانی که اسم مونجم یا طبیب یا غیر اینها بودن بر اثر اطلاعاتی که از وجود داشتن گاهی هست تا طبیب همین طور اساس به مونجم نداره عالم فیزیک منطور عالم شیمی آلمنطور این احساس به نجوم نداره کسی که در چه استادی هم بهجور گاهی اینها منکر وجود خدا میشدن به ایمان به همین این میکرو و سفلان و خدای وجود نداره و همه علت و معلول مادی این راستی به نجوم نداره که تا که یک مقدار از روایا تاکیدش این جهت کفر و ایمانه اینم درسته پس یک مقدارش نیست اینا باطل یک مقدارش هم ناظره به کفر و ایمانه یعنی نمیشه انکار کرد انصافا چون که اینم برعکردم که فلسفی مثلا مبارزه با مشرکی می‌کردن که مثلا گفتن این بت مثلا حالا شریک خداست با این افکاری که میگن زهره و نیلان زهره و عطارد و اینها هم مثلا شریک خداست یا اینها مثلا خالق وجودن یا فقط نظریات فلسفی که منکر خدا باشه با اونها مبارزه موضوع در دستش نیست اونم هست اونم و اونجا فقط یک مشکل داره اون مشکل چیه؟ در اون قسمت یک قسمتش واضح کفره. مثال بگه همه این ستانگان ساختن. در زمین و زمان هر چیست؟ خیلی, خیلی واضح میشه. تمام افعال وجود و تمام افعال سفات الهی رو به اونا نسبت بدن. این به نظر میاد که خیلی واضح. یک قسمتش اینه که نه مشکل. یعنی فصل آفله. یعنی ممکنه بگیم باطل هست. اما میگیم محتقی به اون کفره این یک کمی مشکله تو این... این مرحله ما با مشکل دیگر رو گروه میشیم ردی به نجوم هم نداره مثلا فرسم مثل محتضله که قائل به اختیار مطلق هستن نرزو از بردشون که اگر لوفر از ما خدا هم موجود نباشه ما زندگی رو اداره میکنیم خب چون محتضله مسلمان بودن ممکنه این اخیرا اصلا نرزی اسلامه اینو شرکه القدریتو یکی از دعوه های معروف این که جرعیه جرعیه قدریه مراد که جریا اختیاری ها جریا میگن اختیاری ها مراد قدریه هستند میگن جریا مراد قدریه هستند ظاهرش میخواد به اختیاری ها در اون محتصله مدیو سعاد الام شد دو اون صفحه بودن نور و یزان نور و ظلمن این ظاهرش الگدریت و مدیو سعاد الام نبونه اما چون اینها بودن نمیشه ما نسبت کفری توی این مرحله نصفت کفری خوب دقیق بکنیم ما با یه مشکل دیگه رو هستیم نه به لحاظ نجون به لحاظ اون حد و حدود کفر حتی اگر معتقد شد که خدا بند همه موجودات خبر کرده خالقیت و رازقیت و مثلا ممیت و ماهی رو به نجون بازار افعال رو خب ما ادهه لفشیه داریم که بایده خب بگنم ما الان در شیعه ادهی داریم تا معروف منصوب شیخ احمد احسایی علاقه منصوب نیست ظاهرش که در همین کتاب شرح زیارت جامعه اگر ما میخواستم بخونم در نه احساد کن فل احساد و اروح فل ارواح ظاهرش اینه که ایشون علمه و السلام سلام علل عربعی وجود میدونن هم علت فائلی هم علت سوری هم علت مادی هم علت وایی عشادیون فرعسالو ده تکفیر میکنه من دیدم اونجا تکفیر میکنه که در تمام این اشیاء در دیوار اشادیوان جزئی از بدن ایمن است خب که علت ماضی عالم یعنی الاله خب این مثلا سر تکفیر چه فرما دهسایی از اون مرغانی این از غزینی ما عاشان تریشون تکفیر کرد راستاً یکیش این اعتقاد ایشان راجع به ایمن ایشان انکار معاد جسمانی چی چیزی واقع بود و انکار معراج جسمانی اصلا سر سر تشکیل نشد نشه. سر اساسی تشکیل شیخ احمد احسایی اینه. این مطلب را اینکه علل مادیه عالما تو کمالی از نظر که سریح عقل سادگان فلاسفه هر جامعه ایشون نگاه میکن در زیر این اباظ عقل سادگان میگه از این نظر تعجها در همه تمام اقتصاد عالم تشکیل میده. این در و دیوار همین جزء از فضا در همه زمین است. خب اینکه ظاهرش خیلی ارباع حالا اگه گفتی یک مشکل اینه که خود اینه عقیده کفر یا نه دو یک مشکلی دیگه هم باستو تکفیر ما داریم با که بخصم تکفیر اگر اینسان یک ای عقیده باطلی رو بگه اما لشبهت که این کفره میگاره آخی هم هستیم دوگو میشم هست مثلا مروم مجلسی در زل روایاتی که در باب تکفیر در کافی جلد اول کافی ها در مراتل اقول جلدش چنده یه بابی داره. باب و تفریز النبی نبی و علمه این تو کتاب الهجه کافیه آن اونجا مدازه کنیم مرمون مراتبه بود چند تا احتمال تو تفریز داده یکی از ها رو اینجور گرفته که خداوند مطال عالم رو خلق کرد فرسر و ز عمر خلق و رزق و احیاب و اماتر به علمه مجدد کار اینه بیمین حالا اگه یکی گفت فرسر و ز عمر و رز و احیاب و اماتر به علمه. مرحوم میضی تصریح میکنه که این عقیده باطل نیست ممکنه این کار ممکنه اما ادله براش نداریم خوب دقت بکنید از روایات ما این مطلب رو در نمیاریم اما باطل نیست این مستحیله. مستحیل مستحیل نیست اما از ادله در نمیاریم این عباده من ما مجید مشکل پس اینه خوب یاد باشه چون مرحله تفسیر ما حتی ممکن است دیگه واقعاً قائلم که خداوند خلق کرد تمام این امور رو به دست بدون مسئله تو یک خود این اعتقاد کفر میاره چون میگه خدا خالقیات دار خودش اینگه خالقی نبوده دو اگر اعتقاد باطلی مثل این اعتقاد میده شبهتن حسرت لهم کفر میاره چون اونا ممکن است بگن خداوند ها فرمود و مددرات امره این مددرات امره یعنی نجوم یعنی نجوم تدویر عالم میکنه کنن خلق آلم، رزق عالم احیا عالم اماته عالم دست ببینید این لشو بحث این حسن پس خوب ده بکنید ما دو بحث داریم یکی یک، آیا این نجوم این مقدار در ما تاثیر دارن خلق ما دستونه هاست، رزق ما دستونه این یه بحث علمی، امروز باطل هم داره این. داری که نجوم، بوزیکون قربشون، خورشی، قطعاً در ما تاثیر داره، دوستمون دیگه خلق و رزق و الهام و الهام، این هر واژه‌ای گفته که با شده، این جزو علمیه. آیا اینها تا چه درجهش کفر میاره؟ معلومه شیخ پنچی صورت که بعد چند صورت که انصافا بعضی از شوبرش رو میشه گفت قطعاً کفره بعضی از شوبرش قطعاً کفر نیست، بعضی از شوبرش واقعا ابهام داره، انصافا مشکل داره. لیکن تکفیر و سوار مشکل هم خیلی مشکله. بحث تکفیر یه بحث بحث تأثیر و و حقیقت اونها اون بحث دیگری است که متاسفانه خلص شده خلاصیه بحث علم نجوم فی نفسه هیچ مشکل نداره احراق کتب هم نداره تعلیمش و تعلیمش شد اینها فی نفسه بله اگر واقعا شخص احساس میکنه این کتاب های نام نجوم و فالبینی و میگن ستارهگان در این ما سخمی کتابی اتساب شده هر کی من طلبش فلان باشه و اینها اگر واقعا در اون ممکنه به و اثر آسان زش باشه مثلا بگه کلان رفیق است که با تو خودش نزدیک این گوز بده خیلی از هم هم داره این بیاد مثلا بره با اون دعوا بکنه و مثلا انصافا اینها جایز نیست به حکم عقل قضیه به حکم شهر این کارها حرام ترتیب آثار بر اونها قطعاً نیست اگر واقعا به این نیار بین الله کتابهایی باشه و اینم زریف و نفس باشه یا افراد زریف و نفسی باشن که متأثر بشن به این کتابها انصافا یا اونا رو با یا و یا تبدیل کتاب احراق کنی از محل خود اشی برگ کنی در حال انصافا این جهت رو باید مراعات کرده این جهت که در افکاری که زریفه مثلاً چون مسئله که باشه اما خب مردم شوید نهاز درستان ننبال و باسیب بیسر همیند تا ننبال هم الان من فکر میکنم اون احراغ کتب هم که رو باید داشت بشه قضیه قردی قبول مشکلی نداره اون که سنده واضح نبود بشه قبولش کرد لاکه اثبات قائدی کنی روشنگی نیست یک بخش علمی تأثیرات بلکه کواکب دورتر ستارگان و اجرام جرمی دورتر در روی زمین اجمالاً ثابته اون مقداری که در کلمات اینها آمده ثابت نیست این که خداوند در طبیعت اشیائی بوده بالاتر از اون مقداری که ما بهش به مراتب میلیاراد و اول معروف بالاتر اون هم ثابته این که اهل بیت علیهم السلام گوی گفتن هست که غیر از ما کسی نمیدونه اون هم ثابته باشه اون رفتی به علم نجوم نداره اون مقامات دیگریه. ما اگر انسان در معرض این است که به خاطر علم نجوم یک احکامی رو بار بکنه و حکم بکنه و آثاری متراکم بکنه قطعاً جایز نیست، هیچ جایی بحث نداره. و اون آثار نمیشه بار کرد. شهادت بر سر اونها قطعاً جایز نیست. لا اول شهادت منجمه. شهادت فلان شهادت و اونها قطعا قابل قبول نیست. اون شهادت قطعا از حد بعید عمل حس است. اصلا حسه نیست. که مثلا فلان اوزاست دلاز میکنه که فلانی دوسته این هیچ ارزش حقوقی نداره ارزش عرضش در دادگاهی نداره نمیشی بهش اصاب کرد این و... میبینه هراین من آخر علاوه‌یا حالی به لحاظ و انسان از الله